راه نزدیک شدن بیش از پیش به حضرت عبا عبدالله علیه السلام رو لطف کنید بفرمیم یکی از کارهایی که امام حسین علیه السلام خیلی دوست می‌داره و راضی هست و توصیه هم کرده ابنای گناب میشون جد بزرگواری شون این که به یاد امام زمانمون باشیم این بهترین کار از امور و کارهایی هستش که دل حضرت رو خوشنود میکنه چون مسئله ظهور امام از سامناله دست خداست حفظ و حمایت هم دست خداست اما این یه واقعیت یه یه حقیقتیه که ایشون حضور داره بین ما حاضره حضورش رو باید درک کنیم. ظهورش دست ما نیست اما حضورش رو باید دنبال کنیم و درک کنیم. این بهترین کار هست برای ما انسان ها و بهترین دلخوشی برای اعمال علیه موسیقی خصوصای امام حسین که برای دین مبین جدش اونجور دارد مشکلات انتهامل که